بسم الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الحمد لله رب الله اللهم الله جميع متعرض کلمات مختلف مختلف مراجع متعدد مرحوم حاج سهرونی مرحوم حاج حسین قدس سره الله نفسه شد فعلا خلاصه کلمات ایشان اون که مربوط به بحث قانونی و فقهی این بحث قانونی و اعتبار قانونی اینی که شلون استحقاق عقوبت رو بر خود فعل نمی بینن. مخالفت خود تکلیف بر عرض هم هم که چون منجرالی که انسان عرض اون یا نیت مخالفت داشت در این هم نمیگینن ایشون بر مجموعه ای از اقدام انسان بر عملی که احراز کرده مبغوظ مولاست حالا بر برمحلی باشه اون اقدام انسان اون رو قبیه میدونن عقلن و عقلان البته و مورد استرااب اوت اون رو میزند پس نه حجمه و نه خودد ف مثلا شبه خنگ ت شبهخن باقعی قطعاً حرام و قبیره و میار از سر شبه نیست. می میار اینه که اگر انسان احراز کرد این مزه و ابضا میبلد اون انجام داد این استفاق اوبت مهاریشان این خلاصه محیاری که ایشان دارن ولذا اگر یک مایه و احراز کرد خمره و خورت این یعنی اقدام کرد و نوشید به اصلا و تبایینه که ماه آب و خمر نیست معذاله که استقاع و حقوبت داره ایشان روشن کنید مبنوع پس مجرد از نیست یک تلبس به فعل هست یک نوع اقدام توش هست وکن اقدام علامه احرازه انه هم مولا همین مقبوض لازم نیست مقبوض واقعی باشه حالا تو ایشان قاعده باید بیشتر و این جهراتون اونم یک نقطه قانونی و حقوقی برای این مطلب افاده می فرمیدن ایشون, ایشون در کفایی هم آمده یا تو قدر توی بازانده ایشون که این اقدام ظلمون حد کنه از مولا خلاصه ای کلام ایشونه این اقدام اینا روشن شد اقدام الا ما احرز عنه و مرغوتن للمولا از راه ظلم که خب یک بحث فلسفی و بحث کلامی است حسن یک دفعه از اینجا بحثا روی یعنی این رو محبغان من میخوام نحوه استدلال و دینش ایشان رو از کنم که اگر خواستیم بحث بشه معلوم بشه بحث ما در کجا با ایشان باز واقع بشه پس یکی این که ایشون بگم خود شربه همه واقعی واقعیه واقعی فقط این استقاق و عقوبت نداره خود فعل به ما خود فعل مخالفه هم نداره مجرد از این کافی نیست به عقوبت عرض با اقدام با فعل از اون کافی نیست بله لازم نیست فعل خصوص مخالفت با تکیف باشه همین که اقدام کرد این منشاء بقوت میشه طبیعی عقلا یا اقلان یک معنی خودشون فهمدن این کار قبیح و استحقاق عقوبت داره این خلاصه نظر مبارک تو مقام استظهار هم استدلال هست ایشون به جایی که تفسیر حقوقی و قانونی از مطلب ارائه بدن فرماندن این ظلمه بعد انداختم بحث رو توی بحث دیگر بحث حقوقی کنم آیا این ظلم قبیه است یا عقلی. عقلیتون باید این بحث این قسم خوب مثلا ذاتیت عقلیت حقالالی حفظ نظام خب این, این نحره استدلال خود به خود روشنه که یک مقدار مشکلات داره یعنی مقدار مشکلاتی که مناسب با بحث قانونی اون بحث و پرس اون عقلایی باشه اصلا یا خب هم نداره طوری که مثلا هم نه در کل اینکه قانون که ما داریم حالا اشاعره ممکن که خوب کنه یا لا عقلایی یا هر در کل مسائل قانونی و تفسیر قانون در کل اشاعره باز این تفسیر می‌کنن اگر در ایام از لا تشارخم از ذیل لا تشارخم ما چی می‌فهمن کسی که به اعتقاض این که این مایه خمره اقدام کرد به شربش و همه شده آبه و نفره یک تفسیری برای مخالفت تفسیر و حقوقی بدن که در اینجا آیا استحقاق و حقوقت داری یا نه مثلا اردون داره به شربه خمر آیا استحقاق و حقوقت داری یا نه خب این خلاصه نظر مرگون البته ایشان بیشترین بحث رو بردن رویم مسرکای حسنقا و عقریف که, که در کلمات قبل از ایشان آمده. مخصد متکلمی البته گفته شده که این از زمان متکلمی اتا یک قبل قبل شیخ خاتم از سی توسی آمده مثلا کتب کتاب ریشه نداشت. حالا کار بونه که به ظلم و احسان میدون بحث ایشان بحث برده است تا این جبکه ای آغوست نقوب که میگن ذاتی و یا عقلی است ایشون میگن نه قغلاییست نه ذاتی نیست نه ذاتی کتاب برهانه نه کتاب ایسا جذبه ضرورات ست هم عقلی هم نیست. این نما ها برای نظام، عدم اختلال نظام در جامعه بنابرای این گذاشتن. که این کلی تا مقدار زیادی حرف شبیه غربی هاست. که اونا خسنو پردیر هم منکرن از ذاتی همونی که. این برای حفظ جامعه، برای حفظ نظام، مثل شبیه حجی هسته ایشان نبود تحبیر بندستونده؟ خیلی مغلدم چیزی به کلمات دیگران اضافه نکنید. رأی خدا رو تحریم نکنید. که مثلا باید گفت خصوقه شب است، تابویی، خیلی خلیفه اجتماعی این اگر جامعه‌ای نباشه، نظامی نباشه، خصوقه نیست. از بنا گفت ایشون، شورای شورای صداوسیما، مصالحی رو به عوامل استراتیجیک خودمون نگفته، استقرار شخصی خودش. من خیلی مغلدم استقرار شخصی خودم رو جداو کنم. ایشون این مطلب رو تأیید نکرد. این استقرار بنده این تصوری که بنظر می کناند ایشون ظاهرا خسن خوبه رو عقلی نگرفتن یعنی چیز نگرفتن یک امر به اصطلاح واقعی نگرفتن یک یعنی امر اجتماعی پریده اجتماعی اگر جامعه ای باشه مثلا این خوب خوبه یا بد اگر جامعه بود نباشه نه خوب ظلم بده یا خوب مثلا احسان خوبه نه این بلی داره نه اون خوبی داره و اگر ظلم و احسان به اصطلاح خوبی نداشته باشن حدود و احسان خوبی نداشته باشن دیگه مثل صدق و کزوین ها به طریق اولا اونها هم ندارن شاید که ما چرا؟ ما کسی تنها باشی؟ دنبال کار زندگی بهتر نیست؟ خیش ندارن حواظتر میشه یه دفعه این چند تا برگه در رفت خودش میداد بعدی چیزی بهتری تدار میکنه بعدی چیزی بهتری حالا حالا تنها باشه ما در بحث باجهیت این بحث رو گفتیم که انصاب یه پیز اجتماعی است چون موجز رو تکیل تک که حجیت نداره اما بحث گ گفت خیلی از داره از این باز هم میکنم که با من دیدن بعض اجبااعه می من را که تفیری کلام شانس ای نه با ایشی نفره مطلبه اینو من دارم ببینید البته این خلاصه بحثی که ایشان در اینجا مطرفند این مطلبی که ایشون در اینجا مطلب فرموندن ما در پیه مثلا چند نکته مطالب رو ارز میکنیم دیگه آسواشون بحث تجربی رو اینشالا دامانشه جمع میکنیم در خلال بحث ارز نکته اول ایشون فرمونم مثلا ارز نمیشه در فقیق و قانون مورد تعلق خوب جزء جوزه افعال جوانهیه جزء افعال قلبیه مورد خوب مقراری مطلب ایشون درسته صاف در فقر قالبا ما رو فعل مکلب بار میکنیم نه روی جهات قلبی لکن این که نشه این یک مقداری مثلا ما در قرآن داریم الان ترجمه و سندکا خود از متعلق نه شده بلا خود حرق خود حرق از از نیت قلبی از متعلق نه شده باید این جوریشون میفهمدن که از ممکن است متعلق نه بشه لکن تعبیل باید بشه. یعنی باید برگرده یه چیز دیگری یعنی به ابزارهای اخرى ممکن است سورهان خدا از این بحث قانونیه. اینا بحثیه که لازم است آنها آیا میشه ما در متن قانونی مادی قانونی از ما رو مورد نظر قرار دهیم؟ او متفقان هست که از ما تنها. ها حالا همین من, من همه بحث قانون مکانی را نجور ممکن است بگیم اشکال نداره لکن یک لبی داره ظاهرش عزمه لبی داره وقتی میگه از نکنی خوب دقیق کنی اون لب واقعی شنید مشکل مقدماتش هم نشید یعنی راست این مطلب ایشان به حسب خوب دقیق بکنید که من میخوام تحقیل آیه هم بشیم ممکن است ما عزم رو تا یک ماده قانونی تو خود مکن قانون بیاریم اما آزتا همینطوره که ایشون فهمیدن این باید چنایه ازشید دیگر دیگری باشه بلا تقربه خب اون قرب احتمال داره که مثلا اشتغال و مخدمات باشه بله بلا تقربه قرب باز ممکن آدم تصور بکنه اما از تصور نقیق قانونی بشه و این که ایشون فهمیده نمیشه بله چرا به طبق قاعده نمیشه اما بعید نیست که ما در بعضی از موارد قانونی خود ارزم رو خوب دقصد بکنید خود ارزم رو مورد نه قرار بدید نه به خاطر خود ارزم که کنایه از جات دیگری باشه مثلا ولی ترزم و اقدس نکاح خوب دقصد بکنید چون گفته نشده من ارزم کنم یه احتمال داره که خود ارزم اینجا محل نه قرار گرسه که نتیجهش این باشه حرمت عبدی تو شردید خب یعنی اگر شما آمدید در ایام عبد عقب بستید برزن چون نه من در مبارس نه توضیح دادم، نه خودش رده یعنی خودش زجله مثل در این حال نفری هم توش داره نفر در وعای اتباه در وعای خانون و لذا ما این توضیح در محله خودش ارز کردیم به لحاظ قانونی گاهی تعبیر ما نفیه لکن به ملازمه نحیم توش داره گاهی فلا جدله ولا فسوق ولا رفسته ولا فسوق ولا جدال فلا هسته لیکن نحیم توش داره این کار رو نکنم این یه بحث اعتباریست این اختصاص به لغت قرآن نداره به نظر ما تو قوانیم عبر اما به هر حال در قرآن و در روایات ما فعلا این هست حالا بگیم در تمام قوانین هست اون برعکس دیگری ظاهر نهیه و درست هم هست لغتا نهیه لکه نهی هم از سوش بالملازمه حالا این بالملازمه طولیت داره شه این ما شر 18 تا احتمال داریم چون شرط مشخص باشه نمیخوام تکرار بود عکسش هم میشه نهیه اگر نهی بود نهی هم توش داره ما مثلا تصوفا در بابه احرام قبل المیغات یا مثلا سلا لا سلاس الا الا قبله لا سسل الا الا قبله هر دوش آمده هم نه هم نه این که من عرض میتونم حالا ممکنه چون ما الان در تعابیر قانونی این کار نمی کنیم. الان ما در تعابیر قانونی اما این در تعابیر قانونی چون من عرض کردم یکی از بحثای مهم قانونی خدا ادبیات قانونیه این خیلی بحث مهم میشه. ممکن است شما گید ما الان در عدویت قانونی کار نمی کنیم در عدویت قانونی همه روستات نفسی می آید چون نه زجر یک نوع آمریت توش خوابیده یک نوع حاکمیت نکن میگن الان مثلا مناسب با عرف قانونی نکن نیست نمیگن نکن بر می نه نیکی میگن نکن مثلا با عدویت قانونی بیشتر جمبه های تاکین در همون تلازم قانونی نهی همش در میاد دقیقاً این یک بحث لطیفی حالا ما ادبیات قانونی فعلی ما هر چی باشه اونی که الان در روایات داریم عملا اینه حالا شما تفسیرات عادی گفتید ما اونی که در روایات الان داریم اینه هم نفی داریم هم نهی داریم تو بحث لاذره خب اینو میگم ارزی هست بعد از مرمون شیخ خوشتری البته بحث در قبلم بوده در برزیوارات ادبا بچید در اصول ما بعد از مرمون شیخ خوشتری ایشون اصطراکن لازرن نهیه یعنی زرن نهن خب قبل از ایشون موسه شیخ مودن لازرن نهیه نح... زرن نیست این لازرن نهیه یا نهیه ما در اونجا توضیح دیدیم به لحاظه ادبی لازرن, لازرن که نهیه که نهی نیست اینا اشتباه کر تلازم قانونی رو با بعض عددی به لحاظه عددی که نبیه، بیه رو که نه زرم نیست لیکن در تعابیق قانونی خوب دخش رو کنی در تعابیق قانونی گاه رو قات میاد لیکن توش نفی هم هست نه میاد توش نفی هم هست ولذا اگر گفت مثلا لاس و سل الا غیر قبله نهیه یعنی جلو نماز گرفته. لیکن نفی هم هسته نگه نماز قبله غیر خوندی نماز نیست. ما در بحث نگه در اینجور تفسیر کردیم بقدر دارم چون لا در لغت عربی یا نه در لغت فارسی این صلاحیت داره پس لا تو سلع لا غیر قبله که خب روشن این تحلیل بارونی ماست اون ظاهرش نهیه زجره لیکن لا این صلاحیت داره که بگه صلاح هم نیست خب اگر گفت لا تعظم و اقدس هم نکاح اینجا نهی خب داری که نهی واضحه بیه زباقه لغوی عدبیش دونشم افتاده واضحه که نهیه اگر نهیه بگم لا تعزمو لا تعزمو اقدر تن نکاح اینجا خب واضحه نهیه لکه این خواهی نخواهی خب دفت سنید نهی هم توش خوابیده یعنی چه نهی توش خوابیده یعنی شما دیگه عظم بر نکاح نمیاز نه نه عظم نکنید این ایک بسید که مرموم نشده من این رو با نقطه اول برم برسم ما میگیم برید نیست که این نهی از مثل عرض و بیارم خود گفت بخونیم اینا تعبدیمش سکر بکنید. و وقت این باید که از دو چیز بکنیم یا مراد لا تعظمون این به هیچ وجه که این نشید حتی مقدماتش باشیم انجام ندیم مثلا در ایامی که در ادت حتی مثلا به احتمال که صحبتی بشه در خونه شدیم مثلا ا یعنی حتی مقدمات من دلوش بگیره. دو که فسوای از خواهی هم بینید و آن چرا از خواهی هم فسور بر قرآن تا داره بگی اینجا لا تأزمون همچنان که نفع ازم هست نفع از ازم هست نفی هم هست یعنی شما در ایام نکاح اگر اده نکاحی انجام زید دیگه ازم نمیتونی بکنی ازم بر نکاح برداشت میشه ازمتون بر نکاح برداشته میشه که نایاتون هم؟ از فهمت الابدیه و رضا از که ما در محلش از ادهه اصحاب صحابه و حرمت الابدیه از در سالی جهر ما در سالی جهر در جهری که بخون نباشه از اونا در روشه که اصلا مطلقا موجه به حرمت الابدیست از خود لا تحظم و اقدت النکاح حرمت الابدی در اردن. نگفت لا تنکهو نگفت نکاح اگر لا تنکهو بود اگر غرره علیکم اون نکاح از تایب لغل کتاب این ازشون ها در دیدن نمیان پس این مطلبی که ایشون فرمودن از متعلق نهی نمیشه چون جز افعال جوانه نه جوابه جز افعال بدنی نیست افعال نفسی هست اجمالا مطلبیشان درسته اجمالا لکه ما الان در نصوص دینی خودمون داریم حالا میگی غیر سوالیه اما هو بر اخیالی قدیم تو، انسان از توجه. عراق نه؟ نشده. نشده. و این دهکده خود انسان، به نظره خود، از نخستی نداره کطوره؟ در از نقطه, نقطه غالبا عزم. غالبا داره ملاقات نیست انسان. مثل همون صفات نفسانی در عرف کنید مشکل ندر همون جید مثلا گناه اگر تفکرم کردی لیکن فرس رو مثلا هیچی آثار نداره یعنی به لحاظ اون آثار میداره یعنی به این معنا. یعنی به این معنی که اگر آمد ما محبیب اثری بار نکنیم ولی خودش فی نفسه از فی نفسه مورد تعلق تکلیف میداره خیر ظاهر خیر ظاهر قانونی هم ظاهر بنا لا ترزم قانون نکال لیسه تا آمون مالا مفل عبادات دار در نصف عبادات اما خود عرض متعلق تکلیف بشی در جامعه خیلی بعیده یعنی ظهور اجتماعی یا ظهور فردی نداره خود عرض حالا به هر حال این یک نکته راجع به این محل مثل دوبومی که با چون داریم یک مطالب رو حدید من چون حال این که میاده در یه اولاً ثانیان سالسان رابعاً چونه حالا منگذارم بیشتر مساله چون ایشان متعرضه به اصطلاح اقوال خود و خودشون در این مسئله شدن و اشارهی در حقیقت نه این که تماما اشارهی هم فرمودن به این که بل اشارهی هم فرمودن به که مثلا شدت یک احتمالی ابن بنای خود ایشان اقدام الا ما اخرز انه مبغوز للمولى این معیار معابه این شون هست که به مولا سه معیار ادم نیست و رایه دوم ار خود فعل حرام هم نیست این رایه سوم یعنی مجموعه از کلام سه تا رایه در میاد ما گفتیم حالا که در اینجا رسیدیم عقوالی رو که کلا بین اصحاب ما متأخرین غیر متأخرین مطرح شده اقوال رو در باب تجربی بگین که این روشن در در میان این کلماتی که آیان دارن نسبتن مردم آی محقق اراقی یه مقدار وجود یا اقوال بعضیش یه احتمان هم وجوهه بعضیش نقوده در این نهایت افکار خودشون جلد سه صفحه سی اقوال رو عوضه هم و جلد منها منها منها منها لیکن شیش راست حالا شما رو بذارید می شیش راست یک مرتضا و ش... شیخ خود دسته رو منحدم اختضاع تجربی شیعن موجب بولنی تجربی سوال کشف سوء سریرت الفائل و خبس باطنی فقط همین نگاه کاشف از سوء سریره فائله این هم مهیار اغاب نیست اغاب نداره اله دیلا یکرس و اله و لوم ملامت میشه مثل بخی سه هست هست سفت اما موجب اقاب و عقوبت و تو رو این ها نمیشه این رأی اول که تجربی به عنوان خودش به عنوان تجربی و خود فیل فی نفسه مثلا شرب آب آب کوردن فی نفسه نه حرام میشه نه مرگوز میشه به عنوان فعل متجربه هم مرگوز نمیشه و به لحاظه فعل هیچ مشکل نداره ف سهلو و آب فقط این کشف میکنه که فائلش این کسی که انجام داده فرد صالحی نیست این به اصطلاح سوء سريره داره دیگه بخیر نیست متوجه شادت بودین دیگه یه من دیگه گفتم نفس خودم داش و من ها اقتضاءه وللقهل الفاعلي محزن بمعنى كون الفعل من صدوره من غادر فاعل قبيح یعنی این شرب آب این آب خوردنش از کسی که به نیت خمر یا با احراز انه خمر این فعل قبیحه. لکن این قبحش قبح فاعلیه لا من حيث نه اینکه خود آب خوردن حرامه. یعنی قبحی که پیدا میکنه چون به عنوان تجری بر مولا معصیت مولا مخالفت مولا به این عنوان قبح فاعلی هم پیدا میکنه اراج این اراج به اصطلاح صفت برای اختضا نشان منها اختضا او القبح الفاعلی بعد از یک ساعت میشه اراج و اراج به اول عنوان که این وجه می‌خواد این توضیح بده مراد ایشون حال وجه راج عمرادش این بوده. امراج اله تفکیق فلقوب بین ذات الفعل ذات فعل قدیه نیست چون آفردن آفردنگ قدیه نیست و بین جهت صدوری ما عدم استحقاق العقوبت علیه اما بر خود این فعل هم استحقاق عقوبت نداره چون ازدعاش اینه که منات استحقاق هو القبح الفائلی المتولد من القبح الفعل الفعلی روشن شد یعنی این آقا میگه ما قبه فاعلی درش خائل هستیم اما قبه فائلی درش خائل نیستیم چون دوتا شد یکیش هست یکیش نیست اینجا قبه فاعلی کافی نیست برای عقوبه مثلا آشانسه میگه نه همون قبه فاعلی کافیه روشن شد مثلا بشه پس این به آب خورده قبیه نیست به لحاظ نسب اضافه آب خوردن لبن احرازن نه و خم این قبیه خبح فاهی داره آب خوردن که آب خوردن این که ختم نداره که آب خوردن که خعم قبح نداره خبی که داره صدور آب خوردن لبن احرازن این خبش داره پس در اینجا خفه فاهی داره خفه فعی نداره روشه چون تفکیش شد بین دو تا خوب استحقاق و عقوبت هم نداره یعنی وجود خوبه فائلی به تنها کافی نیست برای استحقاق عقوبت ما باید خوبه فاعلی و فعلی هر رو با هم در نظر بگیریم. این هم رأی دوم یا حالا لکه دوم به تحبیر ایشان برای که فائلش ما به دومه نه اون میگه اصلا قبح ترکی فا... یک شبه اون که اصلا قبح هم نداره استحقاق عقوبت هم نداره استحقاق مزمت مزم نداره فقط یعنی آدم تکسیه که سوء سری داره قوه فاعلی رو قبول نمی لوم لوم بده اما به صدای استحق قوه. به هم نه. و نه ها حرام نه یعنی قوه داره حرمت دیگه نه فعل حرمت نداره قبح فائلی داره قبح فائلی تنها با آدم یعنی فعل به خاطر قبح فاعلی قبح پیدا نمی کنه. چون الان خارناس و اقبا قبح فاعلی سرایت میکنه به فعل فعل هم قبیل میشه بعض باز در اینجای که میگن سرایت می به فعل دو قول هست یه قول خود این شرب ما قبیل میشه شه ولو ماه یه قل شرم ماه با عنوان انده و خمران قدید میشه با عنوان تجاریه به اقوالی کرد چون هست این انصافت هم هست چیزا در کم تاهای و مرمون و و دیگران به این تشنگی اقوال نه بوده مرمون آقای بهتر از بقیه وجوه و اقوال رو برده برای تفکراتون بهتر و منها این رعی دوم شد سه رو اقتضاعو لی استحقاق العقوبت علا مجرد الان که دیروزم در کلمات مرحوم هاشم حسین خوندی مرحوم آیه اصفهانی علل اتیام محزن اصلا روی ارض میره لا علل الفعل المتجربه نظرا الى ایشون نوکشه رو بردن به همون نقطه‌ای که اصلا خیلی قانونی نیست نظرا الى اندر تجربه تشریع من المحرمات الجنانیه جنان یعنی قتل جنان به قتل به فرض رجیم به معنای جنانمون جنان جمعه جنمه بهش بهشه باقه. اما جنان به فرد منه اونه لن نه اعضای بدن قول چهارون این طالسه تا قول شد پس خود اعض پس در اینجا چون اعض خودش هرانونشون چون اعض میکرد بگه این کارش حرام. احتمال چهارم، اقتضا اوه اقتضا اتجابی لکون الفعل المتجراب به قبیه هم نه فقط قبح فائلی خود فعل هم قبیح میشه لیکن نه به عنوان شرب ما خوب دقت بکنیم با اون شرب آب فی نفسه نداره اما آب خوردن به عنوان شراب خوردن این قبیهه و عقاب داره نه آب خوردن فی نفسه روشن شد پس فاعلی رو قبول میکنه سریان میکنه قبح به خود فعل, فعل فی نفسه قبیح نبود قیب فعل با عنوان قبیه میشه و منحال اختضاع و لکون فعل المتجربه قبیه همه ما آقابن علی من منجهت انتباه عنوان طغیان علی چون با این فعل طغیان کرده فجاری کرده معد بقا الفعل ذات الفعل علامه و علیه فعل خود آب خوردن فعل واقع حلاله آب خوردن به عنوان طغیان حرامه این عنوان قبح فاعلی سر این نظر خود مرحوم عاضیاس این رأی چهارم چانندری میگه میتاس که با آرا باشه چون من در این وسیله خودم شماره گذاری کردم منها منها آورده این رأی چهارم نظر خود مرحوم عاضیاس قدس الله نفسه که قبح فاعلی داره قبح فعلی هم داره در اسلام با بحث عنوانی نذرات ذاتن حلاله شرب ما ذاتن حلاله و با عنوان که تحقیق به استجاریب این اونان حرامه اقاب هم داره بر خود این آقوردن بهشون اقاب داره این نظر خود مبارک اینشانه قدس الله خسیده بلا استطباعی لحرمت بله ببخشی بلا استطباعی لحرمتی شرعن به ها در امان. این فقط قبع عقری داره شرعین هزه هم تره دیگه اقاب برش بار نیشه و من رأی پنجم اقتضاوهو یعنی اقتضاو تجاری زمین ها با میره تجربی زایدن علازاله. یعنی قبح فائلی داری قبح فعلی داری حرمت فعلی هم داری زایدن علازاله لسیورت العمل بها در عنوان تاری علیه محرمان شرعی هم این حرمت شرعی هم داره لکن لا فی کل لکن لا مطلقن بل فی بعض مباره چون محوم صاحب این البته این عبارتی ایشان نیه صاحب حصول مثلا محبوب بنده این استظهار کردن از عبارت صاحب از عبارت صاحب حصول معلوم میشه که درجات قوم در تجربی چون تجربی مخالفت ظاهریست که تصور واقع کرده درجاتش به حسب واقع الهات میشه مثلا یک کسی خیال کرد این دشمنه یا خیال انسان فاسق فاجر کافر محضور دره اینه کشت. بعد مرموم شد مثلا عبدی بود یا مثلا مولاش به شد دشمن بلاتمنه با کشت فلانه دشمن این که اون دشمن مولاست و ازاش بعد از مدتی مرموم شد که نفه این پسر مولاست خب این حالا دیگه برای مولا پیدا میشه یا بعد از مدتی مرموم شد که این آدم بدی اما در حد رو نبوده یا بعد از مدتی مرموم شد ک من اون صاف اصول به این موارد طرح، بود وقت این کشف واقع شد، اینها تاثیر داره. اونجایی که پسر خودش در بیاد، یک حالت داره، اونجایی که یک فرد عادی در بیاد، حال، یک که فرد مثلا بکاری در بیاد، اون در حد قتل نباشه، یه حالت یک محمد صالح عالم مثلا از مناجی تحریری در بیاد، یک نقش داره. صاف اصول خلاصه حرفش اینه، چون اینجا معصز اون نسبت تنجی رو ما با واقع نمی‌سنجی. ببینی تخلق که شده واقع چیه؟ به حساب درجات او فرما. این هر دو خصول فصول مرموازی نتیجه گرفته بلا این مقدم رو در خصول من نیدارم یه بیال خصول فصول فرموی دو جا داره فصول اصلا من نیدارم لاتن لا مطلب من بلکی بعض که ما ها مختاقه خود قدسی رو قد رزن الادع و مزاهمت جهات الواقعیه شوی میگه بعد واقعه نگاه میکنیم مع از جهات ظاه که حالا اگه این دوستمنون اون کیه، اون درجات خوبش شعر میکنه. من من اکونه خودت تجربی ذاتی گرفتی شو، این داره، این این هر دو این نتیجه که البته هر دلیلی هر دو سالگسوره که تجربی خوبه ذاتی نیست بل به وجود ولی اعتبار. آن ششم اختزاآهو لکونی حرامن شریعی اعلی اطلاع. از این حرامه دائما. لکون قبه تجریز ذاتیه و عدم صلاحیت الجهات الواقعی للمزاهمه مهم استدتی وله حاضر کنی تویانه خب تا اینجا ما اقوالی و همراجه به تجری دیدیم پس تقیقی این اقوالی که تا اینجا آمد یکی این که به اصطلاح به طور کلی یکی این که در طرف شدید داره یکی این که اینجا هیچ تأثیری نداره فعل با حال خودشه قبه فاعلی هم نداره و ده دینی به مجرد تصور اینکه شرب خمره نه فعل عوض میشه نه حال نه حالش آدم بد یاره بد به قول چی فاسد شدن بد بد نیت بد ذمیر بد بز سیرت سقطلا بد کینه بد مثلا <تصفح> آدم بد کینه مثلا این اولا دیگه از تو تجربه نمیاد این امور این طرف یه قولم تماما در این بلکه هم قبح فاعلی داره هم قبح فائلی داره هم, فعلی داره، هم حرمت شرعی داره آب کردن که نفسه حلاله لیکن این آب خوردن در اینجا حرمت پیدا میکنه یه قولم که خب هست متوسط حالا با حساب نساب بکنیم استحقاق حقوبت داره لکن به لحاظ قبح که اصلا میار که حرف کفایی به یک معنی نسود هست به استهقاق عقوبت به لحاظ قبض ظلم هست به لحاظ قبض فاعلی نه فعلی به لحاظ فعلی اون آب اون آب نزد. این خلاصه احوال شیشتا قول دو طرف نقیب داره شدید بود داره بقیه شنگو بر متوسطات متوسط این شیشتا قول در مسئله تجری که برای که اگه بشید برای آب نداره این نمی کنه میگن نه نمی کنه قصه های حقا مای نمی, نمی کن حد که حرمت و ضرمونه اگر این مولاد بودونه این اعتداد نوجود نمیارد نه اعتداد در که انکار باشد اما حد که حرمت فضل میارد این نکته دوم غام راجب چون ایشون متعرض دو سه قول شده ما متعرض اقوال به صور کامل یا وجوه لآقر وجود و اقوالی که در مسئله تجربی وجود داره نکته سه روم از که در کلمات مرموم آشان سین استوانی قدر الله اللہ نفسه امده این بود که تجربی حد حرمت مولا و ظلم علی مولاست این رو خود ایشان تحلیل نکرده یعنی اصلا رفتن رو بحثیه که حد حرمت ظلم بر مولا ظلم آیا جز احکام ذاتی عقلی ذاتیت یا نه اقلالیت برای حفظ نظام خب این خب رفتیم به بحث قانونی نداره؟ ما در بحث قانون اسرا اصلا میخواد خصوص ذاتی باشه یا فعلی باشه یا عقلی باشه یا عقلی باشه یا عقی باشه،, باشه هر چی شما باشه هر ازی نبشه بحثی که ما الان داریم این از که ما باید یک تفسیری راجع به عقوبت بدیم راجع به کیفر بدیم این تفسیر را بوده نه دیگه میخواد خصوص ذاتی باشه و نباشه اون اصلا رفتون بحث داره ایشون یه دفعه بحثو اولا مخلوقونه هم گرفتن ظلم خرد کردو ظلم خب اینو نمیدن تحلیل بکنن این تحلیل هم یه تحلیل فلسفی یا کلامی نیست یه تحلیل باید قانونی بدن برای مطلب حقوقی بدن و اصولا تفسیر واضح و روشنی از حقیقت کیفر و ترتب کیفر ندادن مناسب بیشتر این بود حالا ما در این نکته به طور اجمالی اجمالی برد در سلاب بحثا شد اینشانا توضیح بیشتری بشه از ما در باب احکامات قانونی اون چه که داریم یکی فعل است یکی فائده بلا اشکار. مثلا یه حرم علیه اون خانه مثلا نداریم حرم علیه مثلا ما خامر یام یا جنب یا حرام هر علیه اون میت سوالی که در اینجا میاد با حالا این دفعه به لحاظ ادله شرعیه و سندیات روی خودش در اول بحث مطرحش کنیم یه ما به لحاظ قانونی خوب ده قصد بکنید سوال این میاد الان این بحث در صور زندهی الان ما اصولاً کیفر رو که میخوایم تنظیم بکنیم چون اگر کیفری در کار نباشه حکم مولوی نمیشه مولویت و حکم به کیفره به جزای اگر شو... در امور فردی شما هم همینطوره اگر به بچه بگیم برو نام بخر بدون و پشتر چیزی نیستیم حکم, حکم نمیشی مولوی نمیشه. اگر دانست که اگر نان نخرید یک اثری برخبار میشه اقوبتی یک نحری از جزا اون وقت جنبه یک حکومه پیدا میکنه گزونه کیفر که نمیشه این نمر سلام این کیفر رو ما چجور تفسیر حقوقی بکنیم این تفسیر حبتیم به حالا فرصلا آیات و روایات نداره خودتون بشین چون این واقعا در دنیای قانون این خودش مطرقه این مسئله به طور کلی مور بنابر این که مثلا یک جامعه داره شکل خاصی باشه مثلا آزادی توش باشه اینها در بعض از جوامع شکلی می‌خوان که مثلا اون این مطالب مثلا کلا به شکل دیگری مطرح بشه فعلا وارد اون بحث میخوام بشه. در مورد اینجوری اعتبارات که اعتبارات ترتی باشه مثل پدر به زری یا مثلا مرد به زن یا زن به مرد و چه اعتبارات قانونی باشه یک تفسیری هست که ما اصولا جنا و کیفر رو چهجوری تفسیر بکنیم چیه؟ مرموازی هم شیش تا قول در اینجا دادن این ریشه داره ریشه یه مثل اینه اساس مطلب اینه دو احتمال، یعنی سه احتمال رئیسی هست حالا تقریباتش و اختلافاتش بیش از احتمال میکنه یه احتمال رئیسی که ما بیانی کیفر رو در رابطه با خود خیل در نظر بگیریم یعنی به عبارات دیگر کیفر تجلی خود فعل باشه کیفر شعاع خود فعل باشه مثلا گفت شراب نکن یه کیفری قرار بدیم که شعاع شرب خن باشه مثلا کسی که شراب می کنم این چه کاری می‌کنه کیفر متناسب بابو با شرب خن بازه. به حیثی که اون کیفر ما تجلی یا شعاع وجودی همون عمل حرام باشه مناسب با او باشه مثلا اگر شراب کرد و مخلی که چیز مزرگیه ما بیم ازش پول بگیریم خیلی تناسب پولی نداره با میخواه یا زندانش بکنیم خب زندان کردن جا میخواد، معونه میخواد، بودجه میخواد، از خون ملت باز بردارین در خیلی هر دولتی منابع مالیش مشخصه دیگه یا از معادن اومن میکرد استفاده میکنه یا از مالیات استفاده میکنه یا خودش سرده چیزی داره یا رای پولی داره خب خواهی نخواهی زندان اینجور تکالیف رو براش میاره خب شراب هم بیش از این مقدار که خب او رو جلوش بگیریم او نمیخواد. فرض مثلا با چند تا شلاق دادن مسئله حل میشه یعنی ما باید کیفر رو هم نوع کیفر کیفیت کیفر حدش و خصوصیاتش این رو تابع خود فعل بدونیم اصل کیفر و لزوما مثلا کیفر هم در جایی باشه که فعل واقعا فی نفسه صلاحیت این کیفر رو داره مثلا فرض کنید به به فارسی آب کتیف نخوریم اما اگه آب کسیب خورد خود آب کسیب خوردن این سلایه داره شلاغ کار بلی کرده که کار بلیه اما نه توی سلایه شلاغ هست نه زندان هست نه غرابن مالی هست نه ممنونی عمل هست این, این کیفر با خودکار مناسبی پس ما اصولا توی مسئله عقوبات و توی مسئله جزا و توی مسئله کیفر و استحراغ اصلا این استحراغ به چه جهتیه ببینید اصل کیفیت استحقاقش کیفیتش حدش حدودش ما در تمام این جهات بیاییم اون فعل رو در نظر بگیریم خودشه رابطش با استحقاق هم بر اساس خود فعل باشه خب اگر این مسئله باشه فرض تو مسئله تجری آب خود آب کیزری نداره که اگر ما مبنامون این باشه من منو که ما کیفیت رو از ام... شعاع فعل ببینی شعاع اون گناه ببینی آب که اون خب کیفر نداره ممناهی که کیفر بشه یا حقوبت بشه حتی قبه عقلی هم نمیاره حالا قبه عقلی حساب دیگه داره من هم بازه برقه قبه نمیخوامش این یک ممناه مبنای دوم این که نه ما اصولا در کیفر فعل در نظر نگیریم فاعل در نظر بگیم اون خصوصیات فاعل مهمه در حقیقت اون نقطه ای که منشعه کیفره اون اقدام و تجربی و تقیانه مئیار اونه درست فعل حرامه درست فعل مثلا ممنوع از انظر قانونی. لیکن اونی که مسحهه و اون حالات فاعله تقیان فاعله ما به خود فعل کار نداریم ذات فیلپی نفسه نه این کار نداریم نه اینکه کار نداریم خود فیلپی نفسه مبغوظه خود فیلپی نفسه قبیح و حرامه وکن اونی که میاد مئیار و حقوبت و کیفر میشه اون عبارت از فائله این هم که از عبارت کفایه در میشه دیگه حالا مثلای سجاس همه اعمال بهشت و دوزه هر در همین دنیا هست و جهنم در همینه نفس همونه این میر رو بحث نفس فائل به جهی که رو به قول صابت پایه که معصیت استحقاق اقاب داره همون نکته تو تکرگم هست مرادش این فائل در نظر بگیریم اون جور اصل اقدام که شبیه اون هم در ترمیل همونی میشه با بیگمان داره در عبارات مرحوم آیه سالی هم. پس در بحث دوم ما بیاییم میار رو حالا اینا جهازی هم بحث کردن که دی از این جرس خارجی محشوب و در بحث کلامی فلسفی همیده ما اینجا فقط نظرمون بحث قانونیه بیان بگیم ما در قانون اعتباس قانونی فائل رو میبینیم که تقیان کرده تعدیه کرده این عمل رو اقضام کرده میخواد حرام واقعی در بیاد میخواد در نیاد این دوتا این روز مثاله سر این که ما بیایم فعل و فائل رو با هم ببینیم فعل و فائل رو با هم ببینیم یعنی درستی کار حرامه این فیزاته استحقاق عقوبت داره اما یک درجه باز بیایم حالت فاعل رو هم در نظر بگیریم مثلا من با مثال تجسس مثل جیروبالله جاسوسی برای منافع بیگانه خود این فعل فی نفسه خود این فعل فی نفسه تجسس برای بیگانه اما یه دفعه یک فرد عادی تجسس میکنه قابل نظر وی یه دفعه استاد دانشگاه تجسس میکنه یه دفعه یه فرمانده ارتش جاسسش میکنه یه دفعه یک وزیر چه میکنه یعنی ما میایم اون خصوصیات فاعل رو در نظر میگیریم مثلا شرب آب پی نفسه مباهه اما اگه میخواد یکی که آب بخوره مثلا برای که اون خنک بشه یکی میخواد آب بخوره تشنه یکی کسی میخواد آب بخوره میخواد مخالبت به بکنه شراب بخوره بیایم فعل رو با فاعل دوتایی در نظر بگیرید این بحثا قانونیه راست میگم نه بحث کلامی و تجدید تجسم و, و خاص اینا میسا اصلا ما بحث نمی‌خوایم بریم سوال شما الان فرض سر هستین در اونجا پارلمان نشستین آنگذاری مخلی دفتی تف... توی کیفر قرار دادن و عقوبات و جزایی که میشه این سه تا ممنای کلی کیفر رو ببرین روی عمل کیفر رو ببرین روی فائل کیفر رو و عقوبت رو ببرین روی مجموع مثلا شراب کردن این شراب کردن یک فرد عادی باشه شراب کردن مثل یک مرجع نسته این دوتا دارو بالاتر که در محرم ازان شواص کلی چند چلاغ اضافه یا گویا یعنی این ببین زیادیش شوفود فرما در حرمت محرمه اون ذات عمل یک حساب داشت این که در محرم واقع شده این یک کمی زیادی هم داره یک چند تا زیادی بیاری هم به خاطر این مال جهت فاعلیه پس روشن شد بس ما به جای این بحثی که مقامشان سینوزن و بزرقط خود این بحث با... ریشه این احوالم الان براتون روشن شده چون شش تا قول کرد. ریشه احوال اجباره روشن شد بحثی بحثی قانونی یک دو از مجموعه روایات شرعناش هم میشه ذکر کنیم به طور کلی ما یه بحث قانونی داریم یه بحثی که روایات آیا همون قانونو قرار می‌گیرن مراعات کردن یه چیز خاصی دارن در شریعت ما بحث شریعت رو اول گذاوردیم حالا فیلن بخش قانونی داریم آیا اونی که مناسب با اعتبارات اغلایی حالا یا خب اغلایی باشی اغلایی باشه اونی که مناسب با اعتبارات قانونی که قابل قبول ماست در جامعه انسانی کدومی که از این انها سلاس هست از عبارات شیخ معلوم میشه که آمده مسئله عقوبت و برزر و فعی فقط به فائل دیگه نگاه نمی یه آب خورده آب خورده آب خورده، خورده. نیت ثبیهه اما امر به تشخیص خیالش سال تا خبر نبود این نکته ای تا اون احوال اول ششون که توند اون طرفه یه وقت هم شد سر و الله محمد و آله نمیشه حث فقط هم میشه که فعل و نه یعنی به اسطلاح اینطور میشه که به دل دلاخلی هر دور ما لحاظ میکنم وقت هر دور لحاظ کرده یعنه تر سرگه اصولش این رو چند بینشتا توضیح میرم به ازن دارسته هالا اصولش اینه هر دور لحاظ کردن به لحاظ این که مثلا فیل یک حالت داره اون فاعل حالت دیگه داره یا هر دور لحاظ کردن به معنی که به فیل سرایت رو کنه این مثلا شبه بله هل کانی دوتا سونسر مادی ونسر ماننه بیه کنمانید چه یعنی مادی همون فعل نمیگیرن اصول معنوی همون نیته وراست میگم هر دور میواد هر دو تا با هم داشته باشیم حالا یه تعبیر به تعبیر ممکنه اون تعبیر قابل میشه نه خالص فقط مثلا هر محتو تجسس هم هر دو تا رو تصادف همین هر یک تأهیل محقق بکنیم که وجود اون عنصر معنوی به قل شما این دو عنصر مادی تاثیر می‌کنه یا یعنی این به باعث تجسس یکی تجسس وضعی حالت یه بشد یا حالا تناسب شدت و پیدا او اون شدت و ضعف به خاطر خود تجسس یعنی بخواد میان در نظر میگم وضعیت اطلاعات بیشتری اون میگم هم باشه نه نیت یعنی هر شدت و ضعف هم فعل ممکنه با هم یه بیه در زمان اگه دو تا شد فاعل فعل شد آیا فائل در نظر می به لحاظ خود فائل جدایی است؟ یا نه اون فائل که در نظر می اینکه این فائل نخشی در فعل گذاشته یک فرد عادی معلومات عادی داره و مقامی نداره اما فرد جاسوس که ما مثلا آوروی نظام رو داره این کچکتنی فعلش هم ممکنه برده برده. این حالا مال اینه یعنی بعد تحسیلیم مناسبت بازماند و تو بازی با کنیم این سوال خوب بسیار مشکلیه جذبی که از سوال که نیست مشکل مجبوره الان اون کوچولو نامون که دو تا با هم مباهد اما یه حالی و بعدم تأثیر فاعلیش یعنی قبیل فاعلیش آیا واقعا در خود فیل تأثیر میکنی یا نه و در اخو یا نه تأثیر فاریش روی به قول منزه تأثیر روی کم عقوبت تأثیر فعال رو کی که مثل زندان با اعمال شاخت هر دو زندان این یک ساله این یک سال بدون عمال شافت.